خب سلام به همگی من الان صدا میاد درس. من آذر صداقتی هستم و امروز حدودا دو ساعت و نیم وقت داشتم که صحبتی که میخوام برشما بکنم آماده کنم صحبتی که میخوام بکنم, بکنم حرف خیلی جدیدی نیست که تا حالا نزده باشم ولی مسیری که میخوام اینجا ارائهش بدم خب مسیر جدیدیه و میکن تا این تصویر بیا خب من میخوام از دو تا واژه حفاظت و انقراض صحبت کنم برخلاف خللاف صحبت هایی که تا الان دوستان کردند تا اونجا که من شنیدم صحبت ها در مورد داده و اطلاعات و من میخوام در مورد موضوعات خیلی روزمره کارهایی که با دست میکنیم و که شاید ما نمیشناسیم میکنن صحبت کنم جایی که یعنی موضوعی که میخوام در مورد صحبت کنم یک جایی داره که این شکلیه. این منطقه بشاگرد توی استان هرمزگانه. با این من نواد از این رود تکون بخورم فقط بهتون میگم که حدوداً کجاست. اون جایی که در واقع بیشتری نقطه های قرمز هست. بعدش سمت چپش چند تا نقطه هست و اون منطقه بشاگرد. این منطقه، طبق آمار دولتی، بالاترین نرخ بیکاری رو تو دنیا داره و تا سال 89 من و همکارام فقط اسمش رو شنیده بودیم مثل بسیاری از بقیه آدم که میشه در موردش فقط یه چیزی شنیده باشه و ما اونجا رفتیم به خاطر این گونه خرس سیاه آسیایی وضعیت خرس سیاه آسیایی به شدت در معرض انقرازه همکار ما طاهر قدیریان ما رو دعوت کرد اونجا چون که از سال 89 شروع کرده بود به بررسی وضعیت خرس سیاه آسیایی من دوستانم دوباره برگردم به نقشه قبلی خرس سیاه آسیایی از ژاپن وجود داره تا استان هرمزگان ایران و استان هرمزگان غربیترین ترین جایی که این خرس وجود داره و گونه ها توی مرزهای حضوریشون به شدت آسیب پذیرند خرس سیاه آسیایی یک اسم کلیه و یه زیرگونه ای داره به اسم خرس سیاه آسیایی بلوچی. زیرگونه بلوچیش توی پاکستان هست و توی ایران. ما اطلاعات چندانی در موردش نداری. شش ساله که یک پروژه‌ای به نام حفاظت از خرس سیاه آسیایی استان هرمزگان داره روش کار میکنه. دو تا پروژه دیگه تو استان سیستان و بلوچستان و کرمان هم دارن در موردش کار میکنن ولی این خرس خیلی کمه. وقتی می‌گیم به شدت در معرض انقراض یعنی شبیه وضعیتی که یوز توی ایران داره و منطقه ای که وجود دارم خیلی منطقه عجیبیه جایی که دسترسی بهش سخته جاده هایی که تو منطقه وجود داره و ما میریم تا برسیم به اون منطقه جاده هایی که وزارت راه تاییدشون نمیکنه یعنی اگر که شما توی چنین جادههایی تصادف بکنین بمیرین یا هرچی بیمه شامل حالتون نمیشه و مردمی اونجا زندگی میکنن. اداره هرمزگان اداره محیط زیست هرمزگان به هر حال از ما حمایت میکنه برای این پروژه پروژه یک لوگوی داره برای خودش که هویتیه که هویت بینون مللیشه و محسسه نجوای زمین جایی که من ازش میام جایی که ما قرار بود کارهایی به غیر از برنامه های بوم بومشناسانه در مورد خیرسا انجام بدیم دفعه اولی که به منطقه رفتیم با همچین منظره مواجه شدیم. این یکی از بهترین اکس های منطقه ماست. برای اینکه هوا خوبه، یک کمی ابریه و منظره زیبا. و این منظره‌ای که معمولا میبینیم. ما هم دفعه اول رفتیم توی همین کهپرا پیش همین مردم. از بندر عباس تا اونجا حدوداً 600 ساعت راهه که ما هر بار برسیم به این منطقه. این منطقه اسمش هرمزگان. و این اون دغه پشتیهایی که اونجا می‌بینید محلیه که آدما است را هم میشینند. و نخرستون‌هایی هایی که فکر می‌کنیم تقریباً تقریبا بخش عمده ای از معیشت این مردم باید در بر بگیره. و خب منطقه‌ای که برق به سختی داره به خاطر قاچاق مواد مخط مخدر معمولاً وقتی که اونجایی میشه که آنتنارو قطع کردن قاشاق چیا و شما حتی آنتن در واقع موبایل هم ندارین آبشون ظرف شستنشون شبیه به اینه و این آدما قراره که یک جایی که حتی منطقه حفاظت شده هم نیست دغدغه دق حفاظت از خرس سیه آسیایی داشته باشن ما رفته بودیم اونجا به همین خاطر برای مردمی که بسیاری دغدغه‌های های دیگه میتونه اولویت زندگیشون باشه مثل فقر و بیکاری و مهاجرت قرار بود دغدغه حفاظت ایجاد کنیم و کار سختی بود کاری که شاید خیلی وقتا ما رو خسته می‌کرد و فکر می‌کردیم امکان نداره پشت همون منطقه ها و که دیدین کنار برکه ها این همه ردپای پای خرس می‌دیدیم و این هیجان زادمون میکرد گونه ای که شاید در ایران هفتات هشتاد تا ازش وجود داشته باشه تو منطقه که ما داشتیم کار می کردیم گروهی اومده بودن مهمونی گرفته بودن کنار آب ردپاهای بچه هاشون هم حتی بود یعنی این گروه زایش هم داشت و خب ما ردپاها رو می دیدیم، اندازه می گرفتیم و آدم در متخصصین گیاه شناس با خودمون می بردیم متخصصین هشتر شناس می بردیم تا منطقه رو بررسی کنیم در این بین من و همکارم که الانم اینجا هستن با مردم صحبت میکردیم دنبال یه راهی برای دعوت از این مردم برای حفاظت روزای اول به همکار من گفتن به همکار ما تاهر قدیریان میگفتن که خرس, خرس تو میگفتن تو رفیق قاتلی بهش چون که در گذشته ها تو ذهنشون بود که یک بار خرس به آدمی حمله کردیم و ما با چنین مردم مواجه بودیم ما با مردم کاری که میکردیم بررسی وضعیت زندگیشون بود و پایش شرایط اجتماعی اقتصادیشون بود که ببینیم چی از اون وسط به دست میاریم بچه ها روستاشون رو برای ما در واقع می می‌کردن و اینکه وضعیت چجوریه چیزی که ما میدونستیم اینه که قرار نیست با شورای و دهیاری روستا در ارتباط باشیم ما قراره که از این مردم برای حفاظت درخواست کمک بکنیم این مردم باید دغدغه حفاظت داشته باشن این چیزیه که وقتی توی تهران زیر کولر نشستی موضوعیه که خب مگه میشه کسی دق حفاظت نداشته باشه مگه میشه کسی نگران اتفاقی نباشه ولی وقتی میدین اونجا توی منطقه ای که یک آدم پیری سه تا درخت خورما داره که کلن غذای خانواده‌اش رو از اون ستاد درخت خرما تأمین میکنه و یک خرس که یه قوله بی‌شاخه و دومی اونجا وجود داره که هیچ در واقع مراقب نیستش که چه از درخت خرما بره بالا. از درخت خرما میره بالا، همه ها رو داغون میکنه یه مقدارش رو هم میخوره و میاد پایین برای اون آدم خرس دشمنشه. و ما نمیتونستیم با یک نگاه مهربانانه بگیم که نه، در واقع تو بیا ببین که اگه خرس از منطقت هست بشه چی میشه ما به یه سرنخ بهتری برای این کار نیاز داشتیم و خب میگشتیم با آدما حرف میزدیم تو همون روستاها با همون آدما و سعی میکردیم که آدما رو بیاریم کنار خودمون آدما بیان و با همدیگه بحث کنن و با ما گپ بزنند و حتی یه وقتایی اونا با همدیگه سر یه موضوعاتی گپ بزنن سر اینکه مثلا مهمترین مشکل روستا چیه و ما فقط گر باشیم اونا بگن که الان چی کمک میکنه که اتفاق خوبی بیفته و این کاریه که برای سه سال کردیم این وسط سه تا موضوع به دستمون رسید یکیش یک خاطره بود که به خاطر ارتباط خرس و خورما برای ما جالب بود خرس بعد از اینکه ما سرگینای خرس رو بررسی کردیم به این نتیج که توی اون منطقه 70 درصد رژیم غذای خرس در یک سال خورماه پس این خورماهی که برای روستایی مهمه برای خرس ما هم مهمه این میتونه یه تهدید باشه برای اینکه خرس رقیب غذایشونه و شاید یه جایی بتونه یک فرصت باشه خورما چیزی بود که هنوز مردم این منطقه ازش استفاده میکرد. مردمی که بعد از بررسی وضعیت زندگیشون ما فهمیدیم که خانوما فقط خانمایی که اون شکلی میرن ظرف میشورن بچه ها رو بزرگ میکنند و توی منطقه غذا بپزنده همه این کارا هفت ساعت در روز بیکارن. خفصا در روز خانوما بیکارن آقایون یا معلمن یا یه سری آقایونه پیر یا از کار افتادن توی روستان بقیه دارن توی کیش و بندرعباس و دوبه کارگری میکنن و این وسط یه خاطره ای از صنایع دستیشون تعریف میکنن همشون ما یک چیزی داشتیم که با دو تا گیاه می بافتیم با نخل و داز هر دوی اینا از خانواده نخلن داز که مازاری پال میشه اسمش در واقع توی فرهنگ ها حتی نوشته, نوشته شده نخل ایرانی چیزیه که ته برگشو خرس میکنه وقتایی که بعد از رسیدن خرما هیچ قضای دیگهی وجود نداره برای خرس و یک زمانیه که اتفاقا خرس مجبوره که انرژی جسب کنه و انرژی داشته باشه قبل از در واقع اون بی آوا علفی زمستان این گیاه و ته یعنی میکنش ته برگش یه قسمت سفید داره مردم محلی بهش میگن پنیر داز اینو میخوره حتی بررسی هایی شده که پنیر داز توی بعضی فصل ها 80 درصد رژیم غذایی خرس بود تو اون فصل خاص و حالا یه پنیر دازی وجود داره که خرس بهش نیاز داره و یه سری گیاه داز وجود داره آ این که خب نخله ادامه همون صنایع دستی است. من یه جایی الان حواسم پر شد. بذارین پنیر دازو بگم اینا ادامه بدم قرار این ها به من یادآوری کنن که چی بگم. این داز چیزیه که در واقع این صنایع دستی باش بافته میشه. یه سریش هم با نخل بافته میشه. صنایع دستی که دیدین همش چیزاییه که مال 13، 14 سال قبل از حضور ما سال 92 تو منطقه است. و حتی از نخت بالا رفتن با این ابزاری که اسمش پرونه اون موقع ها دیگه یه چیزی بودش که چند تا تو منطقه بلد بودن ما همه این داده ها رو بررسی کردیم و برنامه راهبردی حفاظت از خرص سیاه آسیایی تو منطقه رو نوشتیم و بعد توی منطقه وز زندگی بدتر هم شد یک زلزله اومد که این آقابتش بود یه سری بلوک سیمانی کنار اون کپرها همیشه وجود داشت که این شکلی شد و مردم دیگه حتی خیلی امیدوار نبودن که میخوان توی اون منطقه زندگی کنه. این مثلا سرویس بهداشتیشون و یه جاهایی فقط خانوما رو داشتیم برای کار کردن خانوما بعد به ما میگفتن که راه حل چیه و همچنان صنایع دستیشون تا این برگای در... گیاه داز این خانمای خانومای که یک ذره این خاطره رو بلدن. میدونن که این صنایع دستی رو چجوری ببافن. و این درخت های که به خاطر اینکه هیچ کس بلد نیست ازشون بره بالا هرس نمیشن. درخت خرمایی که حرست نشه عین دازی که هرس نشه بار نمید. یعنی خرمایی نخواهد بود نه برای مردم محلی نه برای خرس که بخوره. و یا آفت دیگه تو منطقه که گیاهی چندان رشد نمیکنه چون یه سری بوز ول اونجا وجود داره که هر گیاهی که تازه سربزنه رو میخوره. و مایی که با مردم کار آموزشی می کردیم دفترچه دفترچه درست می کردیم؟ تحقیق می کردیم؟ دوربین تلهی روی قارای خرس کار می زاشتیم. و بعد دوربینامونو چک میکردیم و اتفاقایی مثل این خیلی خوشحالمون میکرد مثل وقتی که میدیدیم که یه خرسی توی این قار برای مدتی بوده و حالا فیلمایی که نمیتونم بذارم اینا کشف رمزهایی هایی بود که ما تون منطقه میکردیم برای رفتن سر این قار ما اه اه دوازده کیلومتر راه میریم تا میرسیم سر منطقه قار 8 کیلومتر مسیر رو طی کنیم، تا دوربینا رو چک کنیم و برمیگردیم و دوباره 8 کیلومتر می‌ریم. روی هم 27 کیلومتر در یه روز بعد راه بریم تا این دوربینا رو چک کنیم. و وقتی که این الان آره بذارین برم قبلیش و این اتفاق اتفاق عجیبیه برای ما. ساعت 7:34 یه روز صبح یه خرسی میره توی کار. 8 تا 18 دقیقه اون روز بدون اینکه ما فیلمی داشته باشیم از خرسی که بیاد بیرون یک خرس دیگه که هم هست میره توی غار و فقط چند دقیقه بعدش میاد بیرون چون خرس قبلی توی قاره این نشون میده که این منطقه منطقه‌ایه که این دوتا خرس با هم دیگه در واقع مادر و بچه نیستن و اون احتمالاً یک خرس نره خطرناک برای این بچه است برای این بچه است و اینا همش یعنی این که توی این منطقه زاد و ولد وجود داره حیف که رها بشه سنای دستیشون اینجوری درست میکنن یه سنگ روی زمین و میبافن با سنگ دیگه میزنن یعنی همچنان ابزارشون اینجور چیز و این آقایی که هر جا میگفتیم سنای دستی میگفتن بارو سراغ دادممد دادمحمد کسی بود که یک سری از این سنای دستی رو بلد بود ببافه و حتی خودش ازشون استفاده میکرد و اینو داد محمد یه بار برای ما بافت به این میگن آرگیچ این آرگیچ علک آردشون یا علک پنیرشونه وقتی که شیر رو میجوشونن و این برای همشون خاطره بود این دستگاه آرگیچ داشتنش ف... یعنی هیچکس نداشتهش. داد محمد یکی برای ما بافت و جوون ها حتی اسمش رو بلد نبودن نمیدونستن کارایش چی هیچی در موردش دونستن. و توی تهران و توی حتی بعد در اقبال داشت همه از این خوششون میومد و کاملا منقرض شده بود فیلم ها رو همچنان نشون نمیدم این گیاه دازیه که گفتم میخوام بتون نشون بدم و ما از مردم خواستیم که صنایع دستی به بافن. خانوما گفتن که ما زورمون نمیرسه دازو بچینیم گفتیم خب آقایون کمکتون کنن و خانوما آقایون نشستن توی جلسه با همدیگه صحبت کردن که هر آقایی بره چقدر داز براشون بچینه، چقدر حقوق داشته باشه آقایینو که وجود داشتن اغلب پیرمرد مرد بودن و گفتن ما تو بافتن بعضی از این سرنه دستی بهتون کمک میکنیم ولی چیدنش کار ما نیست پس، پسرای جوون روستاها که هنوز سن مثلا بعد از 18 ندارن که شروع کنن مهاجرت گفتن ما میریم میچینیم و سر قیمتی که میخواستن برن بچینن روز کاریشون با هم بحث میکردن و بعد خانما بافتن ما این صناعی دستی رو جمع کردیم دفعه اولی بود که بافتن و چیزی شبیه این این یکی از بهترین نمونه های ساختن آرگیچه چیزی که اونا بافته بودن برای ما یه آرگیچه انقدی بود بزرگ شبیه قایق و خیلی په که ما فکر کردیم که این بهترین مدل بافتن آرگیچ هم نیست ولی اینا رو آوردیم تهران اینا چیزای یک دفعه اول برامون بافتن اینا همه اون آرگیچاییه که برامون بافتن و بچه هایی که شروع کرده بودن به بافتن چیزایی رو که تا قبل از این خاطره بود انجامش بروش. و ما غرق شدیم زیر کوهی از صنایع دستی که خانومه میگفتش که من نبافتم، یادم به مادرم بافته ولی منم می‌بافم اگه که شماها جمعش می‌کنین و اگه میخریم. و ما غرق شد ازشون بخریم. ما اون صنایع دستی رو از اونا خریدیم با قیمت‌های بسیار کم. آوردیم تهران براشون تگ درست کردیم و یک نمایشگاه گذاشتیم و عکساشونو رو گذاشتیم و در مورد اینکه که فکرم هم وقتم تموم شده ولی میخوام که در موردش صحبت کنم این مصفیه، اینم باز از اون چیزایی که هنرش کاملا تو منطقه منقرس شد بسته بندی سوقات برای آدمایی که ببرن این ورانبه یعنی خورما رو توی این بسته بندی می‌کردن و می‌دادن این با برگ خورماست و باورشون اینه که خورما توی این یک سال دوم میاره و خراب نمیشه من یکیشو هنوز دارم و بعد از سه سال خورما توش سالمه و خراب نشد مصفی هم چیزی بود که فقط اسمش من دونستم که با زن‌های روستایی پیر صحبت کرده بودن و خودشون بلد نبودن و اینا رو بافتن و بهمن پارسال ما اینا رو آوردیم تهران نمایشگاه گذاشتیم و از مردم دعوت کردیم، اومدن و فروختن. چیزی که ما دنبالش بودیم یک چرخه بود. مردم بخوان که از خیرس خوششون بیاد. یک دلیلی، یک نفعی خیرس برای مردم داشته باشه. یه چیزی باشه که به نفع خیرس هم باشه. یه وقتی یه چیزی، یه دلیلی داره که شما از یک دقدقهی براتون ایجاد میشه. ولی میشه انقدر ازش استفاده کنین که از بین ببرینش. و یک کمکی به فرهنگ و معاشت اون مردم بکنه این صنایع دستی که الان میتونیم ادعا کنیم که تا حدی احیایش کردیم در عرض این برنامه 5 ساله صنایع دستی که از دو تا گیاهی درست میشه که چیدن برگ های اون گیاه تخریب منطقه نیست برگ های بزرگ نخل و داس هر کدوم رو که بچینین اون گیاه رو هرس کردین پس به بارور شدن اون گیاه کمک کردین پس غذا درست کردین برای خرص مردم میتونن صناعی دستی درست کنن و صناعی دستی منقرس شدهشون رو احیا کنن و با زدن اون تک ها روی صناعی دستی میدونن که اگه این صناعی دستی فروش میره به خاطر خرسه و هنرشون هم هست یک درامدی که فعلا نمیتونیم ادعا کنیم که جایگزینه ولی یک درامد جانبی هم برای اون مردم هست این دفعه که دفعه آخری که رفته بودیم مردم سخنرانی میکردن دیگه در مورد حفاظت خرس چون که براشون در واقع درآمد داشت و دغدغه دق شون بود کاری که کردیم و شاید از همه بیشتر بهش افتخار میکنیم اینه که وقتی که نمایشگاه گذاشتیم یه تگ داشتیم نوشته بودیم برای حفاظت از خرس محصولمون هر قیمتی که محصولمون هر قیمتی که داشت یک قیمت زیرش بود نوشته بودیم هزینه حفاظت و آدما میتونستن هزینه حفاظت پرداخت کنن و آدما پرداخت کردن اون قدری که پولی جمع شد به غیر از فروش محصولات برای اینکه به مردم محلی اونجا که این سال با ما اومده بودن دوربینا رو چک کرده بودن و یه ذره دغدغه خرص داشتن ردپای خرصو میشناختن سرگین خرصو میشناختن امسال ماه ما به یک نفرشون یعنی یکیشون به ما ایمیل زد و گفتش که خرس سیاه هشت بندی یه منطقه است تو همون جایی که ما کار می جایی که من می خوام برم رو خرس کار کنم. براتون عکس خرس بگیرم. و ما نمیتونیم هر بار 1300 کیلومتر از تهران بریم تا بندر آباس، از اونجا 600 کیلومتر بریم تا منطقه و همه منطقه رو ببینیم. ما بهش گفتیم که باشه. چی لازم داری؟ گفت به من GPS بدین دوربین تلیفی بدین و هزینه حمل و نقلمو بدین و هزینه خورد و خوراکمون. ما از پولی که برای هف... هزینه حفاظت مردم اومده بودن امشگاه و خرج کرده بودن جمع شده بود. پنج یه دوربین دادیم، پول خرید یه دوربین دیگر رو دادیم، GPS دادیم، هزینه حمل و نقلش رو دادیم. این آدم پرشیاش رو فروخت، یه پاترول خرید که بتونه بره منطقه و یه پروژه ای رو شروع کرده که به زودی احتمالاً نتیجه‌ام داره. پروژه ای ما سال اول با پول جیب خودمون شروع شد، و به غیر از دو تا بخش کوچیکش که درآمدش یعنی در واقع فاند شد از دو تا مؤسسه خارجی، همه خزینه‌اش از جیب خود ما بود. و حالا این پروژه به درآمدی رسیده که میتونه مردم محلی رو بهشون پول بده که اونا این پروژه رو ادامه بدن. و صنایع دستیش توی تهران شده تاب مردم، بچه ها باش تاب بازی میکنن و آدمو هر بار میان سراغ ما و میگن که ما ایده های جدید داریم برای اینکه با صنایع دستی شما چیکار کنیم، چه جوری رنگیش کنین، چه جوریش کنین و استفاده بشه. الان سایت دیجی محصول ما رو میفروشه و توش فکر کنم تنها ای که نوشته بخشی از درآمد در واقع این صنایع دستی صرف حفاظت از خرس میشه و این مسیریه که ما برای احیای صنایع دستی اون منطقه برای حفاظت از خرس پیش رفتیم و امیدواریم که یک روزی بتونیم یه جایی ادعا کنیم که برای حفاظت از خرس هم تونستیم کاملا موثر باشیم و عدد و رقمهایی داریم که امیدوار کنند است. مرسی.